تو ذهن خود نیستی. بزرگترین مانه برای رسیدن به بر روشن شدگی استاد. روشن شدگی چیست؟ گدایی سی سال کنار جادهی نشسته بود. یک روز قریبه از کنار او می گذشت. گدا به طور اتوماتیک کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت بده در راه خدا. قریبه گفت چیزی ندارم تا به تو بدهم. آنگاه از گدا پرسید آن چیست که رویش نشسته ای. گدا پاسخ داد هیچی یک صندوق قدیمی است تا زمانی که یادم میآید روی همین صندوق نشستم قریبه پرسید آیا تا کنون داخل صندوق را دیده ای؟ گدا جواب داد نه برای چه داخلش را ببینم در این صندوق هیچ چیز وجود ندارد قریبه اصرار کرد بی دارد نگاهی به داخل صندوق بیندازد گدا کنجکاف شد و سعی کرد در صندوق را باز کند ناگهان در صندوق باز شد و گدا با حیرت و ناباوری و شادمانی مشاهده کرد که صندوقش پر از جواهر است من همان قریبم که چیزی ندارم به تو بدهم اما به تو میگویم نگاهی به درون بینداز نه درون صندوقی بلکه درون چیزی که به تو نزدیکتر است درون خیش صدایت را میشنوVM که میگویی اما من گدا نیستم گدایند همه کسانی که ثروت حقیقی خیش را پیدا نکردند همان ثروتی که شادمانی از هستی است همان چشمه آرامش جرف که در درون می جوشد آنها اگر میلیون ها دلار پول داشته باشند باز گدایند این گونه آدم ها با کاسی گدایی در دست بیرون از خیش پرسه میزنند تا از اینان ذری لذت یا رضایت کسب کنند آنها اعتبار امنیت و عشق می خواهند و نمیدانند دانند که گنجی بی پایان در درون خیش دارند گنجی که بیشتر از همهٔ آن چیزهایی است که دنیا میتواند به آنها پیشکش کند واژهٔ روشن شدگی ما را به یاد دستآوردهای بعضی از عبر می اندازد. نفس دوست دارد همین معنا را به واژهٔ روشن شدگی بدهد تا آن را بسیار دور از دسترس ما قرار دهد اما روشن شدگی چیزی نیست جز حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی. روشن شدگی است که در آن تو خود را با حقیقتی اندازه ناپذیر و ناپذیر در ارتباط میبینی. حقیقتی که هم تویی و هم چیزی است بزرگتر و فراتر از تو. روشن شدگی پیدا کردن حقیقت خودت هست حقیقتی که ورای نامها و صورتهاست ناتوانی در درک این ارتباط موجب توهم جدایی از خود و از جهان پیرامون خود می شود. در این صورت خود را آگاهانه یا ناآگاهانه همچون پاره جدا و منظوی در نظر می آوری، سان دینسان زاده می شوند و خصومت با درون خود و بیرون خود تبدیل به قاعده زندگی تو می شود. من تعریف ساده بودا از روشن را دوست دارم. پایان رنج. در روشن شدگی چیزی فرا انسانی وجود ندارد. آیا دارد ؟ البته این تعریف کامل نیست. این تعریف فقط می گوید که روشن شدگی چه چی چیزی نیست؟ نبود رنج. بودا درباره شدگی سکوت می کند. و سکوت او بدین دین معناست که تو خود باید معنای را تجربه کنی بودا برای روشن شدگی تعریفی سلبی به کار میبرد تا تو از آن باور نسازی و آن را دستاوردی فرا انسانی و دور از دسترس ندانی علا این دورندیشی در باور اکثر بودایی ها روشن شدگی چیزی است که فقط نصیب بودا شده است و نصیب مردمان دیگر نخواهد شد حداقل در این دنیا شما از واژه هستی استفاده کردید ممکن است توضیح دهید منظورتان از این واژه چیست هستی حیات جاودانی همیشه حاضر است که ورای صورتهای گوناگون زندگی است صورتهایی که در معرض تولد و مرگند با وجود این هستی نه تنها ورای همه صورتهای گوناگون حیات هست بلکه ذات نامیرا و نامشهود همه چیز و همه کس نیز هست یعنی هم برای ظاهر همه موجودات هست و هم باطنی ترین باطن آنهاست هستی به عنوان ذات حقیقی تو در دسترس توست قیشتن خیش توست اما سعی نکن هستی را با ذهن خود بفهمی تو وقتی هستی را خواهی شناخت که قبار فرو فروب نشیند هنگامی که تو حضور داری هنگامی که توجه تو به طور کامل و تمام معطوف به لحظه حال است آنگاه هستی را تجربه می کنی اما هرگز نمی توانی هستی را با ذهن خویش بفهمی گشودن چشم بروی هستی و ساکن شدن در حال و مقام احساس شناخت روشن است. وقتی شما درباره هستی سخن میگویید آیا منظورتان خداست ؟ واژه خدا در طول تاریخ هزاران ساله گذشته مورد سو استفاده قرار گرفته است من این واژه را با صفه به کار میبرم منظورم از سو استفاده آن است که بسیاری از آدمها بدون آنکه حتی تا نظری به قلم بی عالم قدس که در پس این واژه قرار دارد انداخته باشند، این واژه را چنان به کار میبرند که گویی میدانند درباره چه چیزی صحبت می کنند. یا بعضی ها خدا را انکار می کنند گویی میدانند چه چیزی را انکار کردند؟ این سو استفاده از واژه خدا، باورهای غلط را در ذهن ها به وجود آورده و موجب ابراز نظراتی سخیف شده است مانند اینکه خدای من یا خدای ما تنها خدای حقیقی است و خدای تو باطل است یا این گفته مشهور نیچه که خدا مرده است واژه خدا به مفهومی بسته تبدیل شده است هنگامی که این واژه ادا می شود تصویری در ذهن نقش می بندد. پیرمردی با ریش و موهای بلند و سفید کسی یا چیزی که بیرون از توست نواجه خدا و نواجه هستی هیچ کدام نمی توانند حقیقتی را توصیف کنند که در پس این واژه است پرسش اصلی این است آیا این واژه برای تجربه آنچه که با آن اشاره می کند؟ کمکی به ما می کند؟ و یا مانع چنین تجربه‌ای می‌شود آیا این واژه به ورای خود با آن حقیقت استعلایی اشاره می‌کند یا نه آیا این واژه مفهومی ذهنی شده است که تو با آن باور داری باور داری اما تجربهش نمی نمی‌کنی آیا این واژه خود حجاب شده است به تعبیر شیخ محمود شبستری عارف ایرانی هرچه منظور عقل و دیده بود، عقل داند که آفریده بود صورت ذهنی آفریده توست، زان که محدود فهم و دیده توست کرده مخلوق خیش نام الله تا که از پرستی گم را واژه هستی چیزی را وصف نمی کند. هستی مفهومی کشوده است واژه‌ی هستی آن بی‌منتهای نامشود را در مفهومی محدود و بتواره جای میدهد. هرگز نمیتوانیم صورتی ذهنی از هستی داشته باشیم. هیچ کس نمی تواند هستی را در انحصار خود درآورد. هستی ذات توست. تو بدون واسطه با هستی خود در تماس هستی. هستی تو حضور توست. من هستم. مقدم است بر من این یا آن یا چنین و چنان هستم بنابراین با برداشتن فقط یک گام می توانی از واژه‌ی هستی به تجربه هستی برسی بزرگترین مانع تجربه این حقیقت کدام است بزرگترین مانع برای تجربه حقیقت یکپنداشتن خود و ذهن است این خطا موجب گریز ناپذیری فکر می شود ناتوانی در توقف فکر بزرگترین مصیبت است اما ما متوجه این نکته نمی شویم زیرا تقریبا همه از آن رنج میبرند و این رنج عادی شده است هیاهوی بیوقتی ذهن مانع پیدا کردن قلم به ساکت درون می شود قلم روی که از هستی جدا نیست هیاهوی ذهن همچنین خود ذهنی و دروغین می و همین خود ذهنی است که سایی از ترس و رنج بر زندگی ما میافکند. دکارت فیلسوف عقیده داشت که بنیادی ترین حقیقت را یافته است. من میاندیشم پس هستم. او در واقع اساسی ترین خطا را به زبان آورده بود. مساوی پنداشتن فکر و هستی، و یکی پنداشتن خود با فکر کسی که به فکر معتاده است که همه به آن معتادند در حالتی از جدایی در دنیای پیچیده در مشکلات و درگیری زندگی می کند. دنیایی که شدن پاره شدنهای روزافزون ذهن را منعکس می کند روشن شدگی حالتی است از وحدت یگانگی و در نتیجه آرامش ژرف یگانگی با زندگی که در همه صورتها ظهور کرده است یگانگی با جهان یگانگی با خیشتن خیش و حیات ناپیدا یگانگی با خدا روشن شدگی فقط پایان گرفتن رنجها و درگیریهای مدام درونی و بیرونی نیست بلکه پایان سلطه وحشتناک فکر بیوقفه نیز هست آه چه رهایی باشکوهی یکی دانستن خود و ذهن طوفانی پر گرد و قبار از مفاهیم برچسبها تصورها واژهها قضاوتها و تعریفها میآفریند که چراغ رابطه های حقیقی را خاموش میکند یکی دانستن خود و ذهن حجابی است که تو را از تو دور میکند تو را از آدمهای دیگر دور میکند تو را از طبیعت دور میکند تو را از خدا دور میکند همین هجاب تیره فکر است که توهم جدایی میآفریند توهم این که تو هستی و یک دیگری کاملا جدا از تو هم هست. آنگاه این نکته اساسی را فراموش می کنی که زیر سطح زباهر همه چیزها و صورتهای جدا از هم، تو با همه چیز، و همه کس وحدت داری منظورم از فراموش کردن آن است که دیگر واقعیت این وحدت بدیهی را احساس نمی کنی ممکن است باور کنی که چون این وحدتی وجود دارد اما نمی توانی این وحدت را بشناسی یا تجربه کنی آری، باور تسکین دهنده است اما تجربه خود توست که رهایی می بخشد فکر به بیماری تبدیل شده است بیماری زمانی اتفاق میافتد که چیزهای در بدن از حالت تعادل خارج میشوند برای مثال جدایی سلولهای بدن و تکثیرشان هیچ اشکالی ندارد اما وقتی این اتفاق بیارتباط با کل اندام رخ میدهد سلولها به شدت افزایش مییابند و ما دچار سرطان میشویم ذهن اگر از آن درست استفاده شود ابزاری است عالی و مفید. اما اگر از این ابزار استفاده درستی نشود ویرانگر می شود. به عبارت دقیق تر نه این که تو از ذهن استفاده نابجا می کنی، بلکه اساسا از ذهن خود هیچ استفادهی نمی کنی. این ذهن است که تو را در دست خود می گیرد و از تو استفاده می کند. بیماری همین است. تو باور کرده ای که عین ذهن خود هستی. این باور توهمی بیش نیست. ابزار بر تو چیره شده است. من کاملا موافق نیستم. درست است که ذهن من نیز مانند ذهن بسیاری از آدم ها پر است از فکرهای بیهدف، اما من هنوز میتوانم از ذهنم استفاده کنم و با استفاده از ذهن خود به چیزهایی برسم یا کارهایی را انجام بدهم. فقط به این دلیل که میتوانی جدول روزنامه‌ها را رو حل کنی یا بمب اتمی بسازی نتیجه نگیر که بر ذهن خود تسلط داری و تویی که آن را به کار می‌گیری همانطور که سگ دوست دارد دندان خود را در استخوان فرو کند ذهن نیز دوست دارد دندان خود را در مسئله ها فرو کند به همین دلیل است که ذهن جدول حل می‌کند و بمب اتمی می‌سازد تو هیچ علاقی به این چیزها نداری بگذار از تو بپرسم آیا می توانی هر وقت که خواستی از ذهن خود رها شوی آیا کلید خاموشی ذهن را پیدا کردی؟ منظورتان این است که ذهن را به طور کل کنار بگذارم؟ نه نمی توانم شاید برای یکی دو لحظه بتوانم این کار را انجام بدهم تو ناآگاهانه خود را با ذهن خیش همذات میپنداری بنابر این حتی نمیدانی که تن به بی‌ثارت ذهن دادی مثل این است که جن زده شده باشی و خودت خبر نداشته باشی تو این وضعیت جنزدگی را عین خودت میپنداری آغاز رهایی هنگامی است که تو در میابی که وجود حقیقی تو همان حالت جنزدگی تو نیست یعنی همان حالت متفکر اگر این نکته را بدانی حقیقت خیش را مشاهده خواهی کرد به محضان که شروع به تماشای متفکر می کنی سطحی بالاتر از آگاهی را در خیش فعال می سازی انگاه می فهمی که قلم روی بیکرانه از آگاهی وجود دارد که ورای فکر توست و نیز می فهمی که فکر پارهی کوچک و حقیر از آن قلمرو بیکرانهٔ آگاهی است البته این نکته را نیز که تمامی آنچه که مهم است زیبایی عشق خلاقیت شادمانی آرامش درون آن سوی ذهن جوانه میزنند و میبالند بدین سان بیدار میشوی